مرغان كاراگاه روزی بود و روزگاری بود در زمان قدیم در یکی از شهرهای فارس یک مرد خداپرست و صالح بود که او را درویش دانادل می گفتند و همه اهل شهر او را می شناختند و برای اخلاق پسندیدهش به او احترام می گذاشتند. دانادل در یکی از سالها میخواست به حج برود و تصمیم گرفت قدری زودتر از آنکه کاروان حج راه بیفتد تنها حرکت کند و آهسته آهسته در شهرهای بین راه گردش کند. خرج سفر خود را برداشت و با زاد و توشه خود راه افتاد آن سال ماه حج در تابستان بود و دانادل پیش از نو روز آزم سفر شده بود روزها راه می رفت و شبها در دهات و آبادی های سر راه منزل می کرد. اما روز سوم در میان بیابان به کاروان سرای خرابه ای رسید که محل دوست ها بود دوزدان راهزن وقتی دانادل را با زاد و توشه دیدند خوشحال شدند که تنهاست و زورش به آنها نمیرسد. پس او را در میان گرفتند و به خیال اینکه او با آنها جنگ خواهد کرد با چوب و چماغ قصد زدن او را کردند دانادل که خود را گرفتار دید اول عصایی را که در دست داشت به زمین انداخت و به دوست ها گفت صبر کنید صبر کنید من یه نفر بیش نیستم و شما چند نفر اول به حرف من گوش بدهید بعد هر کار می بکنید. دستها گفتند: «بیخود به خودت زحمت نده که با زبان بازی نمی توانی از چنگ ما فرار کنی. دانادل گفت: « نه، من هیله ای ندارم که به کار ببرم. میگویم که من پول و دارایی زیادی همراه ندارم. لباس من هم به درد شما نمیخورد. من یک درویش هستم که به زیارت می و تنها هستم و عذیت کردن من از مردانگی دور است درست است که شما کارتان دزدی و راهزنی است. اما جوانمردی سرتان می شود زور گفتن به من برخلاف جوانمردی است دوست ها جواب دادند. حالا دیدی که میخوایی ما را خام کنی و از چنگ ما فرار کنی مرد حسابی ما اسم خودمان را دوست گذاشته ایم و خود را پیش خدا و خلق خدا روسیاه کرده ایم که این فکرها را نکنیم و اگر میخواستیم در فکر خوبی و بدی باشیم و وجدان و شرافت داشتیم که میرفتیم مثل بچه ی آدم کار میکردیم و نان میخوردیم دانا دل گفت بسیار خوب بسیار خوب حالا که حرف حسابی سرتان نمی شود این من و این هم زاد و توشه و دار و ندارم. من فقط کمی پول سفر همراه دارم و اگر شما از گرفتن این چند سکه ناچیز به آرزوی خودتان می رسید هرچه دارم بگیرید و رهایم کنید تا بروم. من هم با هر سختی و دشواری میروم تا به آرزوی خودم که زیارت هست برسم دوستا گفتن؟ عجب آدم ای هستی خیال میکنی داری بچه گول میزنی اگر تو را رها کنیم میروی و جای ما را به مردم نشان میدهی و ما را گرفتار میکنی بهتر این است که اگر وسیتی داری بکنی و دوعایت را بخوانی و آمادهی مرگ باشی دانادل گفت البته این کاری است که از دست شما برمیآید اما ریختن خون بیگناه برای شما بدبختی میآورد و زودتر از آنچه خیال می کنید به پنجهٔ ادالت و مکافات عمل خود گرفتار میشوید دستها بنا کردند به قاه قاه خندیدن و گفتند <تصفيق> در این بیاوان بی آب و علف پنجه ادالت کجا بود و چه کسی شهادت خواهد داد و مکافات عمل یعنی چه ما که دزدیم تو هم که کشته می شوی کس دیگری هم اینجا نیست و تمام شد و رفت و خنجرها را کشیدند و دور او را گرفتند و قصد کشتنش کردند دانا دل که دیگر امیدی به رحمانها نداشت مانند همه کسانی که در معرض خطر قرار میگیرند حیران و سرگردان به چپ و راست نگاه میکرد و منتظر بود بلکه کسی پیدا شود و او را نجات دهد اما هیچ بوی امیدی نمیآمد. فقط در بالای سر آنها یک دست مرغ صحرایی سار با هم پرواز میکردند و جیک جیک کنان سر و صدای زیادی راه انداخته بودند. دانادل از روی ناچاری و ناامیدی نگاهی به مرغها ها کرده و گفت آهای مرغها، ها ببینید و شاهد باشید من در این بیابان به چنگ راهزنان بیرحم و خدا نشناس گرفتار شدم و جز خدا کس دیگری نمی بیند و نمی داند شما هم شاهد باشید و انتقام خون مرا از این ظالم ها بگیرید دوست ها باز به این حرف خندیدند و به او گفتند <تصفيق> عجب آدم ساده و حالوی هستی اسمت چیست؟ گفت دانادل گفتند عجب اسمی داری اسمت دانادل است و خودت اینقدر نادان مرغ های هوا را به کینجوی و انتقام خواهی میتلبی حقا حق کریختن خون آدمی به این نفهمی هیچ باز خاصی ندارد بعد او را مسخره کردند و کشتند و مالش را برداشتند و از آنجا فرار کردند و رفتند هر وقت فکر میکردند که دانادل از مرغ های هوا خواهش کرده که انتقام خونش را بگیرند به این حرف میخندیدند روز بعد چند مسافر از آن راه به شهر میامدند و همین که خبر قتل دانادل به شهر رسید مردم خیلی غمگین شدند مجلس ترهیمی برپا کردند و چون دانادل هرگز به کسی بدی نکرده بود و دشمنی نداشت به هیچ کس گمان بد نمیرفت ولی اهل محل و آشنایان منتظر بودند که قاتلان دانادل پیدا شوند و میگفتند خون بیگناه عاقبت دامن جنایتکار رو میگیرد و او را رسوا میکند چندی گذشت و نوروز پیش آمد و بعد سیزده نووروز شد در این روز که مردم دسته دسته در سبززارها و زیر درختها دور هم می نشستند، از اتفاق آن دست دزدان قاتل دانادل هم به صحرا آمده بودند و در گوشه زیر درخت بزرگی دور هم نشسته بودند و به تفریح و گفتن و شنیدن سرگرم بودند. عد از بچه محلی های دانادل هم در نزدیکی ایشان زیر درخت دیگری جمع شده بودند. البته کسی دزدها را نمیشناخت و آنها هم مثل دیگران بودند و موضوع دانادل هم دیگر داشت فراموش میشد و کسی به یاد آن نبود در این روز که هوا خوب و دلپذیر بود دستهای گنجشک روی درختها مینشستند و بلند می شدند و پرواز میکردند و جیک جیک میکردند آنها هم برای خودشان از هوای بهار و گردش سبززار استفاده میکردند گاهی که گنجشکا روی درختی جمع می شدند و زیاد شلوغ می کردند کسانی که زیر آن درختها نشسته بودند آنها را می پرندند. باز همین که دوره هم جمع می شدند جیک جیک خود را سر میدادند و آواز می و از این شاخه به آن شاخه می پریدند یک بار هم گنجشکا بالای سر دسته دزدان روی درختی که آنها زیر آن نشسته بودند جمع شدند و با جیکجیک جیک خود قوقایی راه انداخته بودند چون فزله آنها روی سر دزدان ریخته بود یکی از دزدها همانطور که با صدای بلند با دوستان خود صحبت میکرد گفت این مرغها را ببین چه شلوغ کردند یکی از دزدها با خنده جواب داد به نظرم آمدند خون دانا را مطالبه کنند دیگری جواب داد نه ببا اینها گنجشکند و آنها سار بودند دیگری گفت اما راستی تفلک دانادل عجب حالویی بود که از ترس جان مرغ ها را شاهد میگرفت. ها صحبت می کردند و از اطراف خود قافل بودند. همین که همسایه های دانادل این حرفها را از این چند نفر شنیدند با هم گفتند یک چیزی هست که اینها از دیدن گنجش به یاد دانادل و موضوع مرگ او افتادند و لابد چیزی میدانند. باید دید که موضوع دانادل با گنجشکها چه ربطی دارد این بود که زود گزمه یعنی مأموران حکومتی آن زمان را خبر کردند و موضوع را گفتند و آن چند نفر دستگیر شدند چون همیشه در میان اشخاص تکار اختلاف وجود دارد، آنها کم کم در حرفها مجبور به اعتراف شدند و یکدیگر را لو دادند و عاقبت خون بیگنا کار خود را کرد و مرغ هوا مأموریت کاراگاهی خود را انجام دادند و دزدها به مکافات خودشان رسیدند.